مقدمه کتاب به نام خدا، نظر به اینکه افسانه ها ماجراهایی هستند غیرواقعی و یا دارای قهرمانانی هستند که کارهای غیرواقعی انجام میدهند و رابطه زمان و مکان در آنها سیری غیرمنطقی را طی می کند، باید دقت کرد که این تخیلها و اعمال غیر واقعی جنبه های بداموزی نداشته باشند. در بسیاری موارد این افسانهها ها مفید و آموزنده بوده و در غالب تمثیل پیام خود را القا می کنند. مانند افسانههایی هایی که پند و اندرز در پی خود دارند و غالباً در این گونه افسانه ها حیوانات سخن گفته و یا قهرمانان آن از نیرویی خارقلعاده برخوردار است در سرزمینهای شرقی افسان سرایی و یا داستانهایی از این قبیل تاریخ دیرینه‌ای دارد غالب نویسندگان شرقی پیام و تعلیم و تربیت را در قالب افسانه بازگو کردند از این روست که مشرق زمین را سرزمین ها نیز مینامند در یک بررسی ادبی افسانه ها از ارزش و اعتباری خاص برخوردارند. اصولاً افسانه ها پایه و اساس فرهنگ این جوامع را تشکیل میدهند. اغلب این قصهها ها سینه به سینه از نسل گذشته به نسل آینده منتقل شده و بین توده مردم جایگاهی ارزشمند دارد. تفکیک افسانه ها از سایر نوشته ها بدین معنی نیست که آن را به صورت مجزا و منفرد ارزشگذاری کرد، بلکه برای شناخت خوانندگان بیان شده و بدین ترتیب آنها را با بخشی از ادبیات آشنا می کند. حقایقی که غالباً در این گونه نوشته ها بیان می شود، هرگز از یک چهارچوب خشک و غیرقابل تحمل برخوردار نیست و پند و اندرز و پیام در غالب داستانی شیرین بیان شده و علاوه بر شکل اصلی داستان که خود به تنهایی دارای جذابیتی شیوا و است نتیجه ابرتنگیز نیز در پی دارد که با درک هر دو شکل موضوع خاننده را خوشحال و خوشنود می سازد. محمد عبادزاده کرمانی